پیر مرد لاغر مردنی را که از عصبانیت دست و پایش می درزید پل دادن و از در کلانتری بردن داخل از این آدم شکایت دیم جناب کمیسر به ما توهین کرده کمیسر از مرد جوان و تنومندی که جلوتر از بقیه ایستاده بود پرسید مگه چی گفته؟ دیگه چی میخواستیم مگه؟ خیلی حرف بدی زده اگه پدرم آقاطی ماجرانه می کرد کاریش نهشتم اما به پدر خدا بیامرز فش فوش داد. پیر مرد حرفش را بارید. بله. بهش گفتم کر خر خنگ. الان واسه تون تعریف میکنم. اون وقت شما بگین حقش بوده یا نه. سوار مینی بوس بودم. این جوون تو آلتین با باکار سوار شد. اون وقت میدونین کجا پیاده شد؟ تو میدون تقسیم. نتونستم جلوی خدا بگیرم. یخشو گرفتم و کشیدم. گفتم ماشاءالله هیکل داری قد جوونی زور و قوه داری از آل تیم کار تا تقسیم اگه پیاده بیای پونصد قدمم نمیشه آدمی یه ذره راه و سوار مینیبوس میشه کار خر خنگ درست همینا رو گفتم اگه باور نمیکنین از خودش بپرسین جوان قد بلند و تنومند که هیکلش اندازه یک لنگ در بود حرفهای پیرمرد را تایید کرد دومی شاکی از سمت راست گفت این جوون حقش بوده فش بخوره اما این آقا به من هم فوش دادی مرد قبل از آنکه کمیسر علتش را بپرسد خودش توضیح داد به اونم کرخر خنگ گفتم چون حقش بود لیاقتش رو داشت این مرد هم تو میدون تقسیم سوار مینیبوس شد تا برسیم به آقا جامع دوتا سیگار کشید تازه انگار کافیش نبود یکی دیگه روشن کرد یه سیگارو که خاموش میکرد یکی دیگه روشن میکرد توی مینیبوس از دود سیگار چشم, چشم کم مونده بود خفه بشیم با خودم گفتم لا پنجره رو باز میکنم تا دستمو دراز کردم پنجره رو باز کنم میدونین بهم چی گفت گفت هوا سرد پنجره رو باز نکن اون موقع بود که طاقتم تاک طاق شد گفتم راست میگی هوا سرد پنجره رو نمیشه واز کرد اما کر خرخنگ تو هم که داری مثل دودکش هموم همینجور پشت سر هم از دماغ و دهنت دود بیرون میدی سوو میشاکی گفت. به خدا حق داشته. منم بودم عصبانی می شدم. اینجوری انگار به همه بی احترامی کرده. کمیسر از آن مرد پرسید شکایت شما چیه؟ قربان به من هم فوش بدی داد که نمی تونم تکرارشون بکنم. پیر مرد گفت؟ راست میگه معلومه که فحش دادم. این مرد تو گالاتاسرای سوار سواری می شد و تا سوار شد انگار رفیق چل سالش باشم شروع کرد به تعریف کردن گفت چهار نفر تو توی خونه دو اتاق مستحجرن. زنش دستش درد نکنه، آبگوشت خوبی میپزه. دخترش و پارسال شوهر داده، اما از بدشانسی داماده دست بزن داره. زنش بچه چهار میشه با سزارین خیلی سخت به دنیا آورده. الانم حامل است. میخواد بچه پنجمشو بزاد. اون وقت از من پرسید راهی برای جلوگیری بلدم یا نه؟ دیگه طاقت نیاوردم بهش گفتم آقا، آقای محترم یه مورو کلت، یه دندوت تو دهنت نمونده از منم هف تری. اگه زنت هنوزم بچه میزاد تو نباس جلوگیری کنی جلوگیری رو باید جوانای محله دوستاش نها بکنن آخه آدم ماجراهای اتخابشو واسه مرد قریبهی که تو مینی بوستیده تعریف میکنه کر خنگ یکی از شاکیهای توی صف گفت خیلی حرف درستی زدی. من از دسته اینجور آدم نمی نمیدونی چقدر عصبانی میشم کمیسر از همان مرد پرسید شکایت شما چیه؟ آقای کمیسر، این مرد به من هم توهین کرده پیرمرد مرد گفت بله که توهین کردم، الانم باشه بازم میکنم این آقا به شیشخانه که رسیدیم از مینیبوس پیاده شد بعد همونجا کنار مینیبوس وایستاد و شروع کرد به گشتن جیبهاش هر کاری میکرد نمیتونست پولش رو پیدا کنه. دم غروب بود و خیابونا شلوغ شروع. ترامواای ها اتوبوس ها ها ماشین های شخصی تاکسی ها خلاص هر ماشین بود پشت مینیبوس ما به صف شد. پلیس راهنمایی سوت میزد راننده داد میزدن. اون وقت این آقا انگار نه انگار راحت و آروم داشت جیبهاشو میگشت گشت و گشت و گشت جیب های پالتش کتش جیبهای جلیغش شلوارش و گشت. بعد یه دفعه گفت آه پیداش کردم چشم تو روز بعد نبینه دیدیم یه اسکناس صد ای از جیب بغلش درآورد نتونستم جلو خودمو بگیرم گفتم آدم وقتی سوار مینی بوس میشه پول کرایش رو از قبل آماده میکنه تا مردم اینقدر معطل نکنه واسه خاطر پنجاه گروش هم اسکناس صد ای رو خورد نمیکنن کره خره خنگ رانند فوری جلو پرید و گفت دمت گرم خوب گفتی به حق داری. کمیسر به طرف راننده برگشت شما منم شاکیام جناب کمیسر این آقا بهم فوش داده تو این چرده پیرمرد گفت خوب کاری کردم این آقای راننده به یه خانمی که از ماشین پیاده میشد گفت دستت درد نکنه آبچی به یه خانم دیگه گفت بفرمایید مادر به یکی از مسافرا گفت امو. به یکی دیگه گفت دایی به یه مسافر جوان گفت داداش به یه پسر نوجوان گفت پسرم به یه پیرمرد گفت بابا بزرگ واسه خاطر هیچ کدوم جیک کم در نیومد وقتی میخواستم از مینیبوس پیاده بشم دستم رو دراز کردم تا پول کرایه رو بدم او وقت برگشت به ام گفت دستت درد نکنه بابا جون دیگه طاقت نیاوردم برگشتم بهش گفتم توی ترکی کلمه های مثل آقا و خانوم هست مگه خبر نداری؟ من که نه تو رو نه مادر تو چطور میتونم بابات باشم؟ همه مسافرایی که سوار مینیبوس میشن و خیشاتن، کر خنگ؟ کمیسر به طرف پیرمرد عصبانی برگشت. خب استانبول همین جوریه دیگه. به این سن و سال رسیدی، خاک استانبولو خوردی. اینا رو مگه نمیدونی حالا که طاقت دیدن این آدمای ادب و بی تربیت و خشن و بی اقلان نداری، واسه چی توی سن پیری از خونه میای بیرون؟ ای. کمیسر جلو خودش را گرفت. حرفش را نیمه کاره گذاشت، کمی فکر کرد. بعد گفت: ای آقای محترم،